سلام به شنوندگان کانال هزار افسان. از این کتاب زیبا داستان خونه گل و خونه دل رو تقدیمتون میکنم امیدوارم خوشتون بیاد و تا آخر داستان همراه من باشید قصه خونه گل و خونه دل از قصه های اخلاقی نام قصه خودگویای نقطه اخلاقی قصه است خانه را در دل مردم بنا کن راهی که پسر کوچک انتخاب می کند سمت قبله است که در عقاید مردم راه معنویت است و مثل همه یه قصه ها قهرمان بیپاداش نمی ماند و دختر عمو نصیبش می شود. روزی بود روزگاری بود. پدری دو تا فرزند داشت و یک روز هنگ غروب صداشون کرد. وقتی که اومدن براشون حرف زد که آفتاب عمرم لب بوم رسیده. چه دیر چه زود رفتنیه چون مرک شطوریه که در خونه یه هر کسی میخوابه. من پولی به دست آوردم که بین شما نصمی میکنم اونم به یه که از فردا برین سفر. هر جا که دلتون خواست به هر سامان و محلی که رسیدید برا خودتون خونه بسازید. وقتی که همه پولاتون رو خرچ کردین برگردین اینجا. پسر رو خوشحال شدن و قول دادن که حرف پدرشون زمین نذارن. خون روز سهمی خودشونو رو گرفتن و براه افتادن. پسر بزرگه طرف قطب رفت و پسر کوچیکه هم سمت قبله. اون یکی که طرف قطب رفته بود به هر شهر و دیاری که رسید فوری دست بکار شد و خونه ساخت. درش رو کردش و توی توبرش قایم کرد تا موقعی که پولش تموم شد. ولی پسر کوچیکه که به جای خونه ساختن قاطی جماعت شد، نشست و برخاست و دستی گرفت و تا میتونست به مردم محبت و مهربونی کرد. تا این یکی هم کفگیرش به ته دیگ رسید. هر دوشون برگشتن پیش پدرشون. پدر از شوق دیدار بچه هاش گل از گلش شکفت و خوشحال شد. حالا احوالشونو پرسید و حالیشون کرد که میخواد سمر سفرشونو به چشم ببینه. تا بالاخره این بار هر سه با هم رفتند و قرار گذاشتن که اول طرف قطب برن و بعدش هم قبله. به اولین شهر که رسیدند پسره پدر و برادرشو برد توی خونه‌ای که ساخته بود اتاقی، شاهنشین و همه اتاقارو رو نشونشون داد تا زهر شد خونه خالی بود و بیابادی پسر چند بار رفت بازار و برگشت و یه عالم تقلا کرد تا تونست نهار آش شلم شوربایی رو بخورد پدر و برادرش بده سایر و هم که رفتن همین آش بود و همون کاسه پدره از اینکه پسرش هفش تا خونه خوب ساخته بود، خودشو خوشحال نشون میداد و، چنبارم باری کللا و دستت درد نکنم و نازش بهش گفت. بعد از اون که همه خونه های پسره بزرگ که ساخته بود و وارسی و دیدن کردن تپ قول و قرارشون رفتن طرف قبله رفتن و رفتن، تا سلات زور به شهری رسیدن هنوز وارد میدون شهر نشده بودند که دوست و آشنای پسر کوچیکه از هر طرف سر رسیدن و با گرمی با اونها چاق سلامتی کردند. دیامتی بود که نگو و نپرس هرکس تقلام کرد که برای نهار اونا رو به خونه خودش ببره و هیچ نمونده بود که بر سر این موضوع دعوا بشه تا بالاخره زور یکیشون چربید و اونا رو با خودش برد مهمونی. ساب خونه و اهل و عیالش سنگ تموم گذاشتند و هرچی از دستشون برمی اومد محبت کردند. روزای دیگه همین وضع بود. پدره از شو توی پوستش نمیگنجید. گذشت و گذشت تا از سفر برگشتند و به خونه خودشون رسیدند. تا یه وقت که فرصت مناسب بود پدر بچه دور خودش جمع کرد و رازی رو برایشون فاش کرد. که بله شاید ندونید که شما امویی داشتید که 18-19 سال پیش رفت چین و ماچین و تجارت. همون روزها خبر آوردن که سربنیز شده ولی به فضل خدا راست نبود و صحیح و سالم از سفر برگشته چند روز پیش از اون گروهی که شما خواستم برید سفر اون پول و پیگو وسیله قاصدی رو برام فرستاد و طبق سفارش اون بود که شما رو فرستادم تا هر کدوم از شما که کارتون رو بهتر انجام دادید دومادش بشه وقتی هم که شما از سفر برگشتید هیچی بهتون نگفتم چون میدونستم آدمیزاد شیر خام خورده حالا هم حق به حقدار میرسه و پسر کوچیکم دماد میشه فردا پس فردا هم بله برونه بعدشم عروسی که ایشاءلله مبارکه راستی بهتون نگفتم که جهاز دختره هم چهل بار شطور میله بعد رو به پسر بزرگی کرد و گفتش بابا جون من گفته بودم برو خونه دل درست کن، نه خونه گل. داستان خونه گل و خونه دل برگرفته از افسانه های جنوب صفحه هجده گردآورنده، فرج الله خداپرستی انتشارات پدیده چاپ اول 1349 سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها